سلام دوستان عزیز همراه کانال هزار افسان. امیدوارم که حالتون خوب باشه در داستانی که توی قسمت قبل گوش دادین به اسم کتوله دماغ دراز تا اینجا پیش رفتین که کتوله دماغ دراز به مادرش میگه که این پسر واقعیشه و مادرش برای تصمیم گیری درباره اینکه این که این داره درست میگه یا نه تصمیم میگیره که با هم پیش پدرش برن حالا ادامه داستان رو بشنویم زن گفت گوش کن این موجود میگه که پسر گم شده ماست به من گفته که چطور هفت سال قبل دزدیده و توسط پری افزون شده پین دوز با عصبانیت وسط حرفش دایید و گفت جدا اون اینو گفت یه دقیقه صبر کن این حرفا رو یه ساعت قبل خودم به اون گفتم بعد اومده پیش تو سر تو شیره مالیده خب پسرم گفتی که افسون شدی؟ کمی صبر کن تا منم افسونت کنم با گفتن این حرف دست این نوار چرمی برداشت و به جان جم افتاد و با خشم تمام به سر صورتش کوبید پسر بیچاره گریه کنان فرار کرد کتوله بدبخت تمام روز و بیاب و غذا همه جا ول گشت شب که شد روی پله های کلیسا دراز کشید و خوابش برد. با تابش و خستین پرتوهای خورشید از خواب بیدار شد و به فکر فرو رفت که برای گذران زندگی چه کنه. ناگهان به یاد آورد که آشپز ماهری و در صدت بر اومد تا جایی و برای کار پیدا کنه. هوا که کاملا روشن شد به قصر رفت. چونکه خوب میدونست که فرماندار بزرگ اون ناحیه از کشور به غذاهای خوب علاقه داره وقتی به قصر رسید تمام خدمتکارا دورش جمع و از تماشاش سرگرم شدند سر و صدا و خنده‌هاش اونقدر بلند بود که به گوش پیشکار رسید اون خودشو به اونار استوند و با فریاد گفت به خاطر خدا آروم باشید مگه نمیدونید فرماندار خابیده چند تن از خدمتکارا فوراً از اونجا دور شدن و بقیه جم رو با انگشت نشون دادن. راستشا بخواید پیشکار هم با دیدن جم نتونست جلو خندش رو بگیره. اون خدمتکارا رو دنبال کارشون فرستاد و کتوله رو به اتاق خودش برد. پیشکار وقتی فهمید اون دنبال جایی برای کار میگرده، و آشپز ماهریه گفت پسرم اینجا رو اشتباه کردی. فکر میکنم که میخوای کتوله فرماندار بزرگ بشی. جم جواب داد نه آقا. من واقعا ناشپزه با تجربه ای هستم. اگه لطف کنی و منو پیش سراشپز ببری متوجه میشه که آدم به درد بخوری هستم. پیشکار گفت بسیار خوب. هر طور میلته. اما حرفمو باور کن. اگه کتوله فرماندار بشین نونت تو روغنه. با گفتن این حرف اونو به اتاق آشپز برد. جم در برابر سراشپز تعظیم کرد. طوری که نوک دماغش به زمین رسید. بعد گفت قربان آیا یه آشپز ماهر نمیخوای؟ سراشپز نگاهی از سر تا باش انداخت و یه مرتبه قهقاه خندش به هوا بلند شد. با خنده گفت تو آشپزی؟ یعنی آشپزخونه ما اونقدر بی و قرب شده که موجودی مثل تو میتونه اونجا کار کنه؟ آدم کوچوله عزیز، هرکی تو رو نزدم فرستاده میخواسته سر به سرت بذاره. اما کتوله بیدی نبود که از این بادا بلرزه. اون گفت، اگه یه تخم مرغ یا دوتا، کمی آرد یا کره و ادویه کم یا زیاد تو این قصر استفاده کنم چی میشه؟ فقط اسم هر غذاییو که دوست داری به من بگو و موادشو در اختیارم بذار ببین چه میکنم. اون اونقدر حرف زد تا سرانجام سراشپس تصمیم گرفت اونو محک بزنه. اونا به آشپسخانه رفتن. اونجا بسیار بزرگ و جادار بود و دست کم بیست اجاق داشت که همیشه آتیش در اونها روشن بود. جویباری با آب زلال در آشپسخانه روون بود. و ماهیای تازه رو عذاب می‌گرفتند. همه چی تو آشپزخانه بهترین و زیباترین بود. دسته ای آشپز و شاگرد آشپز سرگرم تهیه غذا بودند. وقتی سراشپز همراه جمپا به آشپزخانه گذاشت، همه ساکت و آروم سر جاشون ایستادند. سراشپز پرسید: فرماندار بزرگ برای ناهار چی سفارش داده؟ آشپزها گفتند: سرورمان بزرگوارانه دستور پخت سوپ دانمارکی و کفته قرمز همبورگی داده. سراش پس گفت چه خوب و رو به جم کرد و گفت شنیدی؟ فکر میکنی از پس پخت این غذا برمیای؟ آی؟ من که فکر نمیکنم بتونی چون این کفته ایو بپذی، چون که روش پخت اون سریه. جم گفت فقط همین؟ چون که اون بیشتر وقتا هر دو غذا را درست میکرد بعد ادامه داد حالا به من چندتا تخم مرغ تکهای گوشت فلان و فلان ریشه و سبزیجات را بدهید و برای پخت کوفته قرمز هامبورگی با صدای پایین به سراشپز گفت چهار نوع گوشت مقداری نوشیدنی قرمز مغز استخان اردک مقداری زنجبیل و فلان سبزی چاهی رو که خواست درمانی داره لازم دارم. آشپز با تعجب گفت عجب، آشپزی رو از کجا یاد گرفتی؟ بله، اینا که گفتی مواد اصلی غذا هستن. اما تا به حال سبزی چاهی استفاده نکردیم. مطمئنم که این سبزی تحولی در آشپزی به وجود میاره. به جم اجازه داد دست بکار شه. اون امبایت نهارتشا نشون میداد. ابتدا یک تخته الوار پهم رو روی دو صندلی قرار داد. همه آشپزا دورش حلقه زد و به کارش خیره شده بودند. اونا سرعت عمل و روش هوشیارانه شروع کارش را ناگزیر تحسین کردند. سرانجام وقتی همه چیز آماده شد، جم گفت: "دیگارا روی آتیش بذارند تا بعد بگه چیکار کنم." سپس شروع کرد به شمردن. یک دو، سه تا اینکه به پونسد رسید همون موقع فریاد زد حالا دیگارو از روی آتیش برداشتن بعد از سراشپز خواست غذا رو بچشه آشپزی که نزدیک اونا بود قاشقی طلایی برداشت اونو شست و خشک کرد و به دست سراشپز داد او خیلی رسمی قدمی به جلو برداشت قضاها رو چشید و ملچ کرد. بعد شگفت زده فریاد زد. براستی بی نزیره. درجه یکه. تو واقعا استاد و هنردان هستی آدم کتوله. سبزی چاهی مزه خاصی به غذا داده. در حالی که صحبت می کرد مخصوص فرماندار به آشپسخونه اومد و گفت که بالا حضرت برای خوردن ناهار آماده است. بارن قضاها را تو ظروف لقره کشیدن. سراشپس جمو به اتاق خودش برد. اما هنوز سر صحبت را با اون باز نکرده بود که احزار شد. اون با عجله بهترین لباس و پوشید و دنبال پیک به راه افتاد. والا حضرت فرماندار بسیار خورسند به نظر میرسید. اون غذاها را تا ته خورده بود و داشت دور دهانشو با دستمال پاک میکرد که سراشپس از راه رسید. فرماندار پرسید: آشپز ناهار امروز کی بود؟ باید بگم که کوفته ی همبرگیت همیشه خوب بوده اما فکر نمی کنم به پای غذایی که امروز خوردم برسه تا به حال چون غذای خوشمزه ای نخورده بودم سراشپز گفت: والا حضرتا، این برای خودش قصه ای داره و موضوع رو از سیر تا پیاز تعریب کرد فرماندار با تعجب گوش کرد و فوراً دنبال کتوله فرستاد و از اون پی در پی سوال کرد. خب، جم نمیتونست موضوع تبدیل شدن به سنجاب و بگه. پس فقط گفت که آشپزی و پیشه پیرزن یاد گرفته. فرماندار بزرگ گفت: اگه اینجا بمونی هر سال 50 سکه طلا دستمزد میگیری. به‌جز این کتو شلوار نو هم به تو داده میشه. ناهارم و باید خودت درست کنی و برای شام باید اونچه رو میگم آماده سازی. از حالا کمک سراشپس هستی. جم تعظیم کرد و قول داد که از هر جهت فرمان بر سرورش باشه. اون بلا فاصله به سر کارش بازگشت. همه از حضورش در رشپس شادمان بودن. چون که فرماندار آدم کم ای بود و معروف بود که اگه از غذای خوشش نمیومد. یا با زائقش جور نبود بشقابا و غذاها رو به طرف آشپذا و خدمتکارا پرد می کرد حالا همه چیز تغییر کرده بود فرماندار بزرگ دیگه از چیزی ایراد نمی گرفت و به جای سه ورد غذا پنج ورد غذا می خورد و معتقد بود که همه غذاها خوشمزد اون روز به روز چاقتر می شد از اقامت جم در اونجا دو سال گذشته بود در این مدت همیشه مورد احترام و توجه بود و واقعی که به یاد پدر و مادرش میافتاد، افتاد اندوه گیل می شود. روزا بی هیچ تغییری می تا اینکه واقعه اتفاق افتاد. کتوله دماغ دراز همیشه اینطور نامیده میشد تا جایی که امکان داشت خودش به بازار میرفت و خرید میکرد. کرد. یه روز صبح به بازار غاز رفت و دنبال قازای چاق و خوب میگشت. حالا هیچ کس از دیدن قیافش زیر خنده نمیزد همه می که اون آشپز مخصوص فرماندار بزرگ بود. زنای قاز فروش وقتی دیدن که نوک دماغ درازش رو به بساطه آنهاست، به خود می بالیدن. اون متوجه زنی شد که با تعدادی قاز دور از بقیه ای نشسته بود. فروشنده برای جلب مشتری فریاد نمی‌زد و از قازاش تعریف نمی‌کرد. به طرفش رفت. قازا رو سبک و سنگین کرد. اونا قازا خوبی بودند. پس سه تا رو با قفص خرید، اونا رو روی های پهن خود انداخت و به قصر بازگشت. در راه متوجه شد که دوتا از قازا مثل بقیه هم‌نواان خودشون جیغ و داد می‌کردند. اما سومی کاملا ساکت و آرام بود و فقط گاهی درست مثل یه آدم آه های امیق می کشید. با خودش گفت مثل این این قاز مریزه باید زودتر سرشو ببرم و قضا درست کنم. اما قاز با وضوح تمام به اون گفت اگر سخت بفشاری مرا بگیرم گاز دست تو را. اگر تو بپیچانی این گردنم تو رو بیدرنگ من به گوری برم. دماغ دراز حراسان شد و قفص و زمین گذاشت. قاز با چشمای قمزده به او خیره شد و بار دیگر آهی کشید دماغ دراز گفت خدای بزرگ خانوم قاز تو میتونی حرف بزنی اصلا به عقلم نمیرسید خب نگران نباش من اصلا به پرنده نایابی مثل تو صدمه نمیزنم من نمیزارم به این وز باقی بمونی مگه من خودم یه زمانی سنجاب نبودم قاز گفت درست میگی منم چون این شکل ترسناکی رو نداشتم. آه، هیچکس فکر نمی که من میمی دختر ودربولد بزرگ به خاطر غذای فرماندار بزرگ کشتشم. جم اونو دلداری داد و گفت دو شیزه غاز آروم باش. به من اعتماد کن. من دستیار سراشپز والا حضرت فرماندار هستم و کسی نمی به تو آسیب برسونه. تو تاقم برات جبهای میزارم غذاهای خوب به میدم و هر وقت که بتونم نزدت میام و با تو حرف میزنم به همهٔ سراشپزا میگم که دارم تو رو برای پختن غذایی مخصوص چاق و چله میکنم تا به سراغت نیان بعد سر فرصت آزادت میکنم قاز با چشمای اشبار از اون تشکر کرد دماغ درازم سر حرفش موند اون دو غاز دیگر رو برای شام سر برید، بعد سرپناهی کوچیک برای میمی ساخت و اونو را تو اتاق خودش گذاشت و وانمود کرد که قصد داره غاز و پربار کنه. همه فهمیدن که نباید سراغ اون غاز برن. متوجه شد که غاز دختر جادوگر ودربولده که تو جزیره گوتلند زندگی میکرد. ودربولد با یک پری پیر در افتاد. پری از اون باهوشتر و حقوق بازتر بود. پس پیروز شد و برای انتقام کشی دخترش میمیو به قاز مبدل ساخت و در اون مکان دوردست رها کرد. کتوله دماغ درازم قصه خودشو تعریف کرد. قاز پس از شنیدن قصهش گفت چیزایی در این مورد شنیدم. از حرفات معلومه که زیر افسونه یک گیاه هستی. یعنی اگه اون گیاه گیاهو پیدا کنی با بوییدن شفصون شکسته می و تو هوشیار میگردی این برای جل خیلی دلگرم کننده نبود. اون چطور و کجا میتونست این گیاه رو پیدا کنه؟ در همون زمان قرار شد والا حضرت فرماندار میزبان پادشاه کشور همسایه بشه که دوستش بود. اون دنبال دماغ دراز فرستاد و گفت حالا وقتش رسیده تا هرچی در چنته داری رو کنی. پادشاهی که مهمونمه بهترین آشبازها رو در اختیار داره که لذیزترین غذاها رو میپزن. اون دابر بزرگی برای تشخیص بهترین هاست تا زمانی که تو قصرمه حواست باشه که میز غذا رو با بهترین غذاها آماده کنی و همیشه باعث شگفتی اون بشی. در ضمن برای اینکه دلخوری پیش نیاد یه غذا رو دوبار درست نکن. هر کاری از دستت برمیاد انجام بده و در این راه کوتاهی نکن. اگه قرار باشه طلا و جواهراتو ذوب کنی این کارو بکن. ترجیح میدم آدمی نوا باشم اما پیش پادشاه کم نیارم و شرمنده نشم. کوتله تعظیم کرد و گفت: "والا حضرتا اطاعت میکنم. تمام توانم رو به کار میندازم تا رضایت خاطر مهمان شما رو فراهم سازم." از این زمان به بعد آشپز كوتوله در انظار دیده نمی چون که تمام وقت در آشپزخانه بود اونجا دستیارای زیادی کمکش میکردند اون دستور میداد میپخت و چاشنی به غذاها میزد پادشاه دو هفته مهمان والا حضرت بود و از ته دل از پذیرایی میزبانش لذت میبرد اونا در شبانه روز پنج وعده غذا میخوردند فرماندار از هر جهت از کار کتوله آشپز راضی بود. روز پانزدهم، فرماندار آشپز کتوله رو احضار کرد و اونو به پادشاه معرفی نمود. پادشاه گفت، تو آشپز بی هستی. دقیقا می دونی چه چیزی خوبه. در این مدت که اینجا بودم، اصلا یه غذای تکراری نخوردم. هر غذایی که پختی بینظیر بود. اما بگو چرا غذای ملکه خوراکیا خوراک دست بالون بانون پستی رو تا به حال نپختی. کتوله هراسون شد. اون هرگز چیزی در مورد ملکه خوراکیا نشنیده بود. اما دست و پاشو گم نکرد و جواب داد، منتظر موندم تا دیدار شاهانه شما مدت زمانی دیگه طول بکشه، و آخرین روز اقامت شما در اینجا با این غذای شاهانه جشت گرفته شد. والا حضرت فرماندار با خنده گفت دقیقا همینطوره. به نظر میرسه تا روز مرگم در اینجا خواهی ماند. پس آشپز ماهرم باید برای روز خدافزی خوراک دست پیچو که منکه خوراکی هست بپذی. اون قضا باید فردا روی میز قضا خوری باشه. و گفت هر طور میل بالا حضرته و اجازه مرخصی گرفت اما در واقع اصلا خشنود نبود لحظه رسوایی اون نزدیک بود چون که نمی دونست دست پیچو که به نام ملکه سوزرین پستی معروف بود چگونه بپزه به اتاقش رفت بسیار غمگین بود گوشه نشست و غرق در افکارش شد میمین که از آشیونش بیرون اومده و تو اتاق میچرخید، نزدش اومد و پرسید چه اتفاقی افتاده. پس از اینکه فهمید موضوع از چه قراره، زبان باز کرد. اون گفت دوستم شادمان باش. من دستپیچ و خوب بلدم و بیشتر اوقات تو خونمون میپختیم. خوب میدونم که چطور درست میشه. اون دستور تهیه مواد غذایی و نحوه پخت اون رو داد و در ادامه گفت. فکر میکنم هرچی لازم بود گفتم. البته ممکنه بعضی چیزای جزئی و از قلم انداخته باشم. باید اقرار کنیم که روز بعد خوراکی عالی که بسیار زیبا این شده بود روی میز غذاخوری تالار گذاشته شد. مهمونا وارد تالار شدن و پشت میز نشستند. مسئول پذیرایی خوراک دست و برش زد و به فرماندار رو مهمونش داد. فرماندار تکهی بزرگ برداشت و اونو در دهانش چپوند. چشماش داشت از صدقه بیرون میزد. پس از قرد دادن لغمه بزرگ گفت آه این واقعا ملکه خوراکی هاست. حالا به آشپز كوتولم باید لقب سلطان آشپز ها بدم. دوست عزیزم تو اینطور فکر نمی کنی؟ پادشاه چند تکه کوچیک خورد، مزه مزه کرد و بعد با لبخندی مرموزانه و تنه آمیز گفت این دستپیچ واقعا عالی درست شده، اما انگونه که انتظار داشتم سوزرین کامل نیست. فرماندار خشمگین شد و با فریاد گفت سگ آشبازها چطور چنین خوراکی درست کردی؟ برای تنبیه باید سرتو بندازم. آشپز کتوله گفت رحم کنید سر برم والا حضرت ها این کار رو نکنید من دست و مطابق با بهترین دستورای غذایی پختم چیزی از قلم ننداختم از پادشاه بپرسید چه چیزی به اون اضافه نکردم پادشاه خندید و گفت من مطمئن بودم که نمیتونی این غذا رو مثل آشپزم بپذی دوست دماغ درازم حالا بدون که دستپیچ، به یه سبزی احتیاج داره به نام ریلیش که در این کشور شناخته نیست. این سبزی به دستپیچ تعم واقعی و خاصی میده و بدون اون سربر هرگز پی به مزه واقعیش نمیبره. فرماندار خشببیینتر شد و غرش گفت: اما من باید این خوراکو با مزه واقعیش بخورم. همین فردا دستپیچ اصل و واقعی و برام بپست. وگرنه دستور میدم سر تو قطع كند حالا برو بیست و چهار ساعت مهلت داری كوتولهی بیچاره با عجله به اتاقش رفت و با اندوه آنچه رو پیش اومده بود برای غاز تعریف کرد اون گفت فقط همین نگران نباش کمکت میکنم چون که پدرم شناخت همه سبزیا و ها رو به من یاد داد خوشبختانه امشب ماه نوه. چون که این سبزی فقط در چنین مواقعی از دل خاک سر برمیاره. حالا به من بگو آیا نزدیک قصر درخت شاه شاهبلود پیدا میشه؟ دماغ دراز با صدای بلند گفت آه بله و بعد با آرامش ادامه داد نزدیک دریاچه که از قصرم خیلی دور نیست انبوهی از این درخت وجود داره اما منظورت چیه؟ اینی جواب داد برای اینکه این سبزی فقط نزدیک ریشه های درختای شاه بلوت رشد میکنه پس تا فرصت دادیم بیا هر چه زودتر به اونجا بریم و اونا رو جمع کنیم حالا منو بردارو به اون محل که رسیدیم زمین بذار. من اونا رو پیدا میکنم. دماغ دراز همین کارو کرد و هم که به درختزار شاه بلوط رسیدن غاز و زمین گذاشت پرنده دمجنبان به طرف دریاچه دوید. جمم دنبالش میدوید و قلبش از نگرانی تند میزد، زد چون که زندگیش در گروه یافتن اون سبزی بود قاز همه جا رو گشت اما بیفایده بود در پای هر درخت شاهبلود جستجو کرد هر علف یا با منقارش کنار زد تا گیاه مورد نظرش رو پیدا کنه کم کم داشت غروب میشد. قاز با بالای گشاده از هم تا جایی که در توان پای کوچیکش بود به این ور و اون بر می رفت. درختا سایه انداخته بودن و تقریبا تاریک شده بود و در پای شاه شاهبلوتا هر چیزی به سختی دیده می شد. اما نگهان قاس سر جاش استاد. از شدت خوشی پشت سر هم بالبال بال زد و به دوست متعجب خودش جایی رو نشون داد و گفت اونجاست. چقدم زیاده. زود باش وقت از دست نده. همه رو بچین. کتوله به گیاه زل زده بود. اتر قوی دلنشینی داشت و اونو به یاد روزی انداخت که افسون شده بود. ساقه و برگاش سبز آبیگون بود و گلی به رنگ تیره سرخ برراغ با لبه زرد داشت. دماغ دراز گفت چقدر با شکوه؟ کاملا مطمئنم که این همون گیاهیه که منو به این شک در ورده. میتونم امتحانش کنم؟ قاز گفت، نه، الان نه، مقدار زیادی بچین، بعد به اتاقت میریم. اونجا هرچی پول و لباسداری جمع میکنیم و بعد از قدرت این گیاه به بهترین نفس سود میبریم. اونا به قصر بازگشتن و به اتاق جمع رفتن. اون پنجاه سکه پس انداز کرده بود، سکه ها، لباس ها و کفش جمع کرد و توی پارچه پیچید بعد صورتشو تو دسته ای از اون گیاه فرو برد و عطر اونا رو به درون فرو داد با این کار اندامش به صدا در اومد و کش پیدا کرد احساس می کرد که سرش از وسط شنه هاش بالا کشیده میشه. با چشمای روبه پایین نگاهی به دماغش انداخت و دید که گوچیک و گوچیکتر میشه سینه و صاف و پاهاش کشیده شده بودن. قاز که با تعجب مینگریست با صدای بلند گفت آه، تو چقدر بزرگ و زیبا هستی، قدار و شکر، تو کاملا عوض شدی. جم به نشانه سپاس دو دستشو به هم چسبوند و از ته دل به درگاه خدا شکر گذاری کرد. البته این شادمانی باعث نشد که محبت های دوست عزیزش میمی می رو فراموش کنه. اون گفت زندگی و رهاییمو به تو مدیونم. بی تو هرگز شکل طبیعی اولمو باز نمیافتم و خیلی زود سرمو از دست میدادم. حالا تو رو نزد خانوادت برمیگردونم. چه کسی دقیقا میدونه که چطور افزونه شکسته میشه؟ از پیشنهاده اونا دلخوشانه پذیرفت و بی اون که دیده بشن پنهانی از قصر خارج شدن. اونا راه سفر رو بی هیچ حادثه ای تهی کردن. جادوگر خیلی زود افزون دخترشو شکست. بعد رکباری از سپاسگزاری و هدایه گرانبها ها کرد. اون وقت دو تلف نکرد و با شتاب به طرف زادگاهش براه افتاد. پدر و مادر، پسر شده خودشونو که اینک مردی جوان، زیبا و خوشندام شده بود، شناختن. اون با پولی که از جادوگر گرفته بود مغازه ای باز کرد. کسب با و کارش رونق گرفت و شادمانه سالهای سال زندگی کرد. حالا نباید موضوع دیگر را از یاد ببریم. در قصر به علت ناپدید شدن جم آشوبی شده بود. موقعی که روز بعد والا حضرت فرماندار به دنبال کتوله آشپز فرستاد، هر جا رو گشتن اونو نیافتند. پادشاه گفت که فرماندار آشپزش رو فراری داده و همین مسئله به بپا کرد. بین اون دو جنگ در گرفت که در تاریخ به جنگ گیاه معروف شد. پس از چند نبرد و کشته شدن تعدادی سرباز، صلح برقرار شد. این صلح به صلح خوراک دستپیچ معروف شد. چونکه آشپز پادشاه در مهمانی به افتخار مهمان پادشاه خوراک ملکه خوراکیات دستپیچ بانوس و زرین رو پخت. فرماندار بزرگ پس از خوردنش زبان به ستایش انگ گشود. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها.